اگه تو مملکت شما خر نیست اثر عزیز نسین ترجمه ارسلان فصیحی، با صدای آرمان سلطانزاده کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات قغنوز باستان اول، هی کمتر شدیم خیلی بیکار ماندم، سلیم افندی به هر جا برای کار میروم دست خالی برمیگردم. می کردم. رازیم جایی دربانی، آبدارچی، چیزی بشوم. آن هم گیر نمیآید. پنج سر آهله دارم توی این دور و زمانه سیر کردن این همه شکم مگر شوخی است اجار خانه از یک طرف خرد و خراک از طرف دیگر طلب از آن یکی طرف دیگر دارم دیوانه میشوم شوم هم که ندارم تازه اگرم داشته باشم به چه دردی می خورد سلیم افندی قد کوه هم اگر باشد تمام می شود هرچه داشتیم فروختیم و خوردیم مدام با خودم میگویم گویم خدایا چه کار باید بکنم دیگر از دوست آشنا کسی نمانده که ازش قرز نگرفته باشم. دری نمانده که نزده باشم. دیگر از خودم هم خجالت میکشم. راستش از بیارزگی خودم هم حرس میخورم. هر کسی را نگاه میکنی راه پول لراوردن را پیدا کرده دارد زندگیش را میکند. من چه آدم بیارزه و دست و پا چلفتی بودم. مثل سگ پشیمانم از اینکه از کار قبلیم بیرون آمدم. حالا خوب است که خودم بیرون نیامدم بیرونم کردند میدانی نه سال بود توی آن کارخانه کار میکردم صاحب کارخانه مجبور شد کارخانه را تعطیل کند مواد اولیه از خارج نمیامد خبم بیچارم حق داشت یک دفعه هم تعطیل نکرد اول نصف کارگره را بیرون کرد بعد کارمندار را یکی یکی دوتا دوتا راهی کرد آخر سرم را به در کارخانه زد مرا صدا کرد و گفت ببین زد بیک من همین امروز ها فرداست که ورشکسته بشم کارگرایی اینجا همشون به گردنم هم حق دارن اما تو وضعیتی نیستم که بتونم حق و حقوق کسی رو بدم آپارتمانم رو ضبط کردن همین روزا حراجش میکنن حتی ماشینم رو هم فروختم اگه میخوای تا موقعی که پاک ورشکسته بشم ماهی 300 لیره بهت بدم اینجا بمونو کار بکن یا اگه میخوای سم و حقوقتو بدم واسه خودت کار دیگه ای پیدا کن کسی که کار دارد فکر میکند همیشه و همه جا کار پیدا میشود من هم نگذاشتم و نبرداشتم هرچی از دهانم در میامد نسار مردک کردم با ماهی سیصد لیره لیر حقوق چجوری کار کنم سلیم افندی؟ فقط اجاره خانم سیصد و لیره است خلاص کلی کلوفت بار صاحب کارخانه کردم. حقوقم ماهی 900 لیره بود. بود.۷ لیره برای سه ما گرفتم و آمدم. هنوز دوم از این ماجرا نگذشته بود که کارهای صاحب کارخانهمان دوباره روبه راه شد. طوری شده بود که سه چهار برابر بیشتر از قبل کاسبی میکرد. منم که آنقدر لیچار بار آن بیچاره کرده بودم نمی توانستم یک بار دیگر برگردم و توی چشم نگاه کنم. ماندم این وسط بیکار و بیار پول ها هم تمام شد درست نه ماه بیکار ماندم سلیم افندی جوانی را می به اسم برهان میشناختم یعنی اینکه که خانه نزدیک خانه من هست از را میرفتم آنجا این برهان را هم توی این قهوه خانه دیده بودم از آن خالی بندهای روزگار بود که نه بزرگتر و کوچکتر حالیش می شد نه حرف دهنش را میفهمید. پسر کنه با آدم میچسبید و یک ریز حرف مفت میزد. کسی هم درست نمیدانست کارو بارش چیست. مدتی این برهان انگار آب شد و رفت توی زمین. دیگر سر و کلش آن طرفها پیدا نمیشد. تا اینکه شنیدیم وارد حزب و حزببازی شده. پسر زرنگ هم بود. صاف نرفته بود عضو حزب حاکم بشود. میدانست اگر یک دفعه عضو حزب حاکم بشود دیگر کسی توی صورتش نگاه نمی کند. رند. اول رفته بود توی حزب مخالف اگر همین جوری فقط عضو شدن بود عیبی نداشت حرفی نماند که علیه حزب حاکم نزند هر جا ده نفر را میدید یک جایی هرجا هر جا میدانی میدید به اندازه کف دست فوری می دوید وسط و شروع میکرد به سخنرانی اینطوری پسر مشهور شد یواش یواش توی روزنامه‌ها عکسش را چاپ میکردند حرفایش را می‌نوشتند دیگر کم مانده بود بیفتد زندان نگو پسر همه کارهایش با نقشه و روی حساب بوده درست سر بزنگاه که دیگر یک قدم بیشتر و آبخونک خوردن فاصله نداشت به آن کارا برای کل گنده ها تلگراف فرستاد که من واقعیتها را دیدم دیگر فهمیدم راه درست کدام است به نشانه احترام دستهایتان را میبوسم تلگراف را از رادیو هم خواندند بعد از این قضیه حزب حاکم انگار که چیز کم‌یابی گیر آورده باشد برهان را دو دستی چسبید روزی دم غروب داشتم خسته و کوفته به خانه برمیگشتم نمیدونی چه حال بدی داشتم سلیم افندی نگو نورس اگر یکی میگفت جونم سرش داد میزدم جونت دراد آن روز برای کار پیدا کردن به هفت جا سر زده بودم و هر هفت جا هم بهم به گفته بودن آدرستونو بنویسید خودمون خبرتون میکنیم. اینجوری مرا از سر باز کرده بودند برای چند قروش قرض گرفتم پیش هر کس رفته بودم پیدایش نکرده بودم آنهایی هم که پیدا کرده بودم گفته بودند پول ندارند توی خانه نان خالی هم نداشتیم سر کوچه مان رسیده بودم تا پیچیدم توی کوچه با همین برهان دماغ به دماغ شدم خدا خودش میداند میخواستم خودم را به ندیدن بزنم و از کنارش بگذرم و بروم اما پسر یک کنه دستهایش را از دو طرف باز کرد آمد به طرفم و دستهایم را گرفت و گفت وای امو عزت کجاها هستی حالت چطوره؟ گفتم خوبم خدا رو شکر. میخواستم زودتر از سر بازش کنم. اما پسر این کنه چسبیده بود ول نمی کرد. شنیدم از کارخونه بیرون اومدین؟ سرسری گفتم بده. و را افتادم. گفت خب الان چیکار میکنین؟ شیطان میگفت دستت را مشت کن و بخوابان توی صورتش گفتم به تو چه پسر اینکه چیکار چی کار میکنم مگه به تو ربطی داره آدم اینقدر کنه ندیده بودم عین سیریش چسبیده بود ول نمیکرد. گفت این چه حرفی امو عزت ناراحتی شما ناراحتی منه خیلی ببخشید که اینو میگم اما شاید از دستم براد و بتونم خدمت کوچیکی به شما بکنم سرش داد زدم نمیخوام لازم نکرده گفت به خدا قسم نمیشه نمیدونین چقدر خاطرتونو میخوام من شنیدم بیکار شدی دستوبار تنگه اگه برات کاری پیدا کنم با حقوق مای هزار و لیره خوبه این پول واسد کافیه البته فعلا بعدن زیاد میشه یک دفعه خودمانی شده بود خودم هم باورم نمیشد اما مثل کسی که دارد توی دریا غرق می شود و به هر خس و خاشاکی چنگ می اندازد گفتم حتی 1500 لیره هم زیاده حالا فعلا آدرس تو بده به من آدرس خانه را دادم سه روز بعد آمد خانه من و گفت کار درست شد رئیس حسابداری سد ترابوزان شدهای تو فقط باید یه درخواست بنویسی همین با آنکه باورم نمیشد این کار درست بشود درخواست را نوشتم و فرستادم بعد از پانزده روز جواب آمد. شما با دو هزار لیر حقوق به مقام رئیس حسابداری منصوب شده اید. خواهشمند است ظرف مدت پانزده روز به محل کار مراجعه و وظایف محوله را شروع نمایید. باور کردنی نبود. اگر روی ورقه سربرگ و تاریخ و شماره و مهر و این چیزها نبود باورم نمی شد. من که گفته بودم 1500 لیره هم زیاد است، حالا دو هزار لیره حقوق داشتم. زن و بچه هایم از خوشحالی خوشحال چه باید بکنند. همه انگار بال درآورده بودیم. مادرم هر وقت خوشحال می شود، ماجرای عروس شدنش را تعریف می کند و بعدش ترانه ای هست که تویش می گوید از پله ها باناز میاد باناز. شروع می کند به خواندن آن ترانه. همین که شنید کاری پیدا کردم با 2000 لیر حقوق، شروع کرد به تعریف کردن اروصیش. گفتم ای مادر این قضیه عروسی تو ویل کن. یه چایی بذار بخوریم. گفت خیلی خوب پسرم. همانطور که داشت بشکن میزد و ترانه از پله‌ها ها با ناز میاد. با ناز رازیر لب زمزمه میکرد. رفت توی آشپزخانه. روز بعدش عقل ما سر جایش آمد. کار با دو هزار لیر حقوق پیدا کرده بودیم. اما ما شش نفر تا آنجا چطور بایست میرفتیم. اگر اسباب و اساس خورد ریزمان را هم بر می داشتیم کرایه راه تا آنجا دست کم هزار لیره میشد ما صد لیره هم نداشتیم اینطوری هم نمیشد که من تنهایی بروم و بعدن زن و بچم را ببرم چون حتی برای یک رو سیر کردن شکمشان هم پول نداشتند من هم که توی چند ماهی که بیکار شده بودم کسی نمانده بود که ازش پول قرضی نخواسته باشم نامه ای را که از اداره صد آمده بود توی جیبم گذاشتم و را افتادم تا شاید بتوانم از کسی قرض بگیرم از هیچ کس هزار لیره که سهل است صد لیره هم نتوانستم بگیرم سلیم افندی پانزده روز گذشت بیست روز گذشت یک نامه رسمی دیگر از اداره صد آمد تا امروز اجرای امور محوله را بر عهده نگرفته اید اگر ظرف ده روز به محل معمولیتتان نیایید، کسی دیگر به جای شما منصوب خواهد شد. داشتم دیوانه می شدم. کار پیدا کردم با دو هزار لیره حقوق اما نمیتوانم توانم سر کارم بروم. هرچه التماس کردم، زاری کردم، فایده ای نداشت. کسی نم پس نمیداد. دو هفته دیگر هم همینطور گذشت. یک نامه دیگر آمد. به اطلاعتان تان اگر تا یک هفته دیگر کارتان را شروع نکنید، حکم کارگزینی شما بی اعتبار خواهد شد. تا محل صد پنج روز راه بود. دیدیم کسی نیست کمکمان من کند. توی خانه من هم چیزی نمانده که بفروشیم و خرج راه را در بیاوریم. چاری نداشتیم جز اینکه لحاف و تشک و لباسهای من را بفروشیم. فردای همان روز همه چیز من را فروختیم. ما مندیم و لباسهای تن من. هزار و لیره گیر من آمد. فوری رفتم و خریدم. آن شب را توی هتل گذراندیم قطار ساعت پنج بعد از ظهر راه میافتاد مادرم از اول صبح شروع کرد که یا لازود باشیم بریم. مادر من الان کجا پاشیم بریم تا حرکت قطار هنوز نه ساعت مونده. باشه شما این استانبول اندازه من نمیشناسید. آدم توی نه ساعت تا خونه همسایش هم نمیتونه بره. ساعت نه شد. این بار زنم شروع کرد. یا پاشید بریم. توی این سرما مگه میشه هشت ساعت توی ایسکا منتظر موند. کار از محکمکاری ایپ نمیکنه ممکنه یه چیزی پیش بیاد. اگر به قطار نمیرسیدیم رسیدیم کار را از دست میدادیم. دادیم آن همه راه را هم بیخود و بیجهت رفته بودیم. اگر با آن قطار میرفتیم تقیق این نود به آنجا می رسیدیم و کار از دست نمی رفت. دخترها و پسرم هم بنای غرغر را گذاشتند یالا بابا بریم دیگه یالا بابا بریم دیگه؟ منم ترسیدم که نکند چیزی پیش بیاید. با خودم گفتم کار از محکم کاری عیب نمی ساعت ده از هتلمان توی سیلکجی را افتادیم. میخواستیم به ایستگاه راه آهن هایدرپاشا پاشا برویم تا قطاری را که هفت ساعت بعد حرکت می کرد از دست ندهیم. هنوز صد متر نرفته بودیم که به خشک شانس یک لات آسمان جل افتاد پشت سر دختر ما. همین جور متلک می پراند. من مدام میگفتم لا اله الا الله. پسرم هم از عصبانیت دستهایش رو مشت کرده بود. مادرم گفت: پسرم کاری به این مرتی که نداشته باش، اگه قطار از دست بدیم بیچاره میشیم. مردکم دست بردار نبود، همین جور حرف مفت میزد. به این میگویند بلای ناگهانی. رنگ دخترم شده بود عین رنگ دیوار. از یک طرف برای آرام کردن پسرم میگفتیم تو رو خدا پسرم کاری به کارش نداشته باش از طرف دیگر برای آرام کردن دخترم میگفتیم تو رو خدا دخترم بهش اهمیت نده اما انگار مطلق گفتن بس نبود مردک جلو چشم همه دست انداخت طرف دختر ما دخترم لابو تنش خیلی درد گرفت چونان جیغی زد انگار یک تکه از گوشت تنش کن شده مردم ریختند و دوره امان کردند پلیس ها آمدند توف شانس. میخواستن مردک مزاحم را با دختر ما به کلانتری ببرند دختر بیچاره کنان گفت بابا جون شما واسه خاطر من نمونید به تا به قطار برسید اگه برسم منم پشت سرتون میام ایسکا اگه نرسم با قطار فردا میام یالا شما برید جیگرم آتیش گرفت اما چه کاری از دستم بر برمیآمد سلیم افندی صد و پنجاه لیره دادم به دخترم گفتم مراقب خودت باش دخترم اگه تونستی خودتو برسون دخترم که از ما جدا شد ما پنج نفر ماندیم. راه افتادیم. صد قدم نرفته بودیم که به خوشگی شانس این دفعه یک آدم مست جلو ما سبز شد. طرف دست و پاهایش به هم می‌پیچید، پیچید. چشمهایش یک وری شده و آب دهانش سرازیر بود. یک دفعه دستهایش را باز کرد و به طرف زنم حمله ور شد. می گفت ای وای مادرم، مادر عزیزتر از جانم، فکر میکردم مردی، چهل سال من بچه یتیم رو کجا گذاشتی رفتی؟ الان از کجا سر و کله پیدا شد؟ آقا، حضرت آقا، برو پی کارت، ما عجله داریم. مردک از آن زبان نفهم ها بود، به زور جلوی پسرم را گرفته بودم، مردک مست، دوباره به زنم حمله کرد و گفت تو معنیش شش ماهگی توی قنداق چطور ول کردی و رفتی یه شوهر دیگه کردی ها؟ سلیم افندی بلای ناگهانی که میگویند یک دفعه سر آدم میآید همین است دیگر دوباره جمعیت دورهمان کرد هیچ جوری نمیشد زنم را از دست مردک دیوانه نجات داد گرفته بودش و مدام میگفت چهل سال منو یتیم گذشته ای آقا جان برو رد کارت خانم من سی و پنج سالشه چطور امکان داره مادر تو باشه اما مردک ولکن ماامله نبود زن بیچاره هم همینطور داد و فریاد میکرد خدایی بود که پلیس سر رسید مردک مست را گرفتند و گفتند را بیفتید برویم کلانتری زن بیچارم گریه کنان گفت حداقل شماها برید و از قطار جا نمونید. اگر رسیدم منم میام وگرنه با قطار فردا میام. چه کار میتوانستم بکنم سالی افندی یازده ماه بیکاری کشیده بودم. مگر میتوانستم کاری با دو هزار لیره حقوق را از دست بدهم؟ دیویست لیره به زنم دادم. آنها به کلانتری رفتند و ما هم در حالی که دو نفر از افراد خانواده را از دست داده بودیم. به طرف ایستگاه را افتادیم باز جای شکرش باقی بود هنوز صد قدم نرفته بودیم که دیدیم مردی نرکشان پرید جلوی پسرمان پسرم مواظب باش محلش نظر. اما مردک که به نظر لات میآمد آمد پسرم را گرفته بود و دست بردار نبود آقای محترم برو پی کارت ما که نمی دو دست یقیه پسرم رو چسبیده بود تکان تکان میداد و میپرسید پسر مگه تو مرد نیستی؟ مرد هستن فرمایش ای بگم مرد ای و ست دارا مردک لات را اگر میدیدی دلت به حالش میزوخت دماغش را اگر میگرفتی جانش از آن جای نابدترش در میرفت پسر ما هم ماشاءالله زور بازویی دارد برای خودش اگر فوت میکرد مردک را باد میبرد حضرت آقا آقای محترم خواهش میکنیم سوی تفاهم شده باباجان دنبال یه لغوه نون هستیم ما باید خودمون رو به قطار برسونیم دست از سرمون بردار دست بردار نبود دوباره گفت ای بگم مردایی مثل تو رو بعد یک تف گنده انداخت روی صورت پسر ما پسرم کم مانده بود گریش بگیرد برگشت رو به من گفت بابا جون، حالا که اینطوری شد اگر شما قطار از دست ندین یالا را بیفتین اگه برسم میام وگرنه با قطار فردا میام فعلا باید حساب این مرتیکه رو برسم صد لیره به پسرم دادم صد لیره رو توی جیبش گذاشت بسم الله گفت و رفت سراغ مردک لات و شروع کرد مردک را مثل خمیر ورز دادن همان موقع پلیس سر رسید ما هم پسر را همانجا گذاشتیم و راه افتادیم از خانواده ما سه نفر مانده بود مادرم گفت نصف شدیم ما؟ ساعتم را نگاه کردم یک ساعت و نیم گذشته بود تا حرکت قطار سه ساعت و نیم مانده بود تا دهنم را باز کردم به مادرم بگویم هنوز خیلی وقت داریم دیدم یک کامیون گنده از روبرو دارد میآید طرفمان. اول به تیر چراغ برخورد تیر را خم کرد و رد شد با همون سرعت به یک ماشین خورد و پرتش کرد ده متر آن طرف در. ما فرار میکردیم و کامیون پشت پش پنج شش نفر را له کرد. ما اول رفتیم آن دست خیابان بعد رفتیم توی یک دکان سلمانی کامیون هم انگار با ما پدركشتگی داشت صاف آمد توی دکان سلمانی دفعه صدای جیغ شنیدم کامیون دخترم را زیر گرفته بود دروغ خدا اوزار رو ببین سلیم افندی. انگار قسمت نبود این یک ذره راه را از سیركجی تا هی در پاشا برویم و سعی و سالم برسید پلیس آمدند تلفن کردند آمبولانس آمد سخمی را گذاشتن توی آمبولانس. دختر بیچارم چون میدانست از بیکاری به تنگ آمده این و خیلی بدبختی کشیده ایم. از روی برانکار سرش را بلند کرد و گفت بابا جون شما به خاطر من معطل نشید. من بعدن میام. مادرم زد زیر گریه. اگر ما هم می ماندیم همه بدبخت می شدیم. صد لیره به دخترم دادم. آمبولانس رفت. فقط من و مادرم دو نفری مانده بودیم خانواده ما توی راه ای کمتر شده بود با مادرم تون دو تون مادرم داشت میگفت پسرم مراقب باش تا برای سرمون نیومده زود خودمونو به این صد برسونیم که یک دفعه صدایش قطع شد نگاه کردم ببینم چه خبر شده که دیدم مادرم نیست فسط خیابان شروع کردم به داد زدن مادر! مادر! نفهمیدم چه شد با خودم می مادرم پرواز کرد. الان که کنارم بود با تمام وجود فریاد میزدم مادر انگار آب شده بود رفته بود توی زمین عده دورم جمع شدند یکی از میان جمعیت گفت ساکت باشین انگار صدایی میاد همه گوش دادیم از جایی دور از اعماق انگار از ته چا صدایی میآمد که می عزت عزت نگاه کردیم ببینیم صدا از کجا میاد دیدیم مادرم افتاده توی گودالی که برای لولکشی کندند نردبان گذاشتیم به ته گودار نرسید، تناب آویزان کردیم، مادرم نتوانست از تناب بگیرد و بالا بیاید بیچاره مادرم توی گل ته گودار گیر کرده و مانده بود گفتند این زنو با کمک شهرداری نمیشه نجات داد، باید از وزارت آبادانی و مسکن نیرو بخوایم. مادر بینوایم از ته گودار صدای هم زد و گفت پسرم تو برو معطل نشو، اگه به قطار نرسی کار تو از دست میدی یالا زود باش اگه قسمت بود و از این چاله در اومدم بعدا خودم و میرسونم صد لیره برای مادرم انداختم بعد خودم شروع کردم به تونتون رفتن ساعت سه و نیم بود تا هر کت قطار یک ساعت و نیم مانده بود پیش خودم دعا میکردم خدا یا کاری کن بی غذا و بلا به ایستگاه برسم خانواده شش نفریمان توی راههای کم و کمتر شد تا آخر سر فقط من ماندم سوار کشتی شدم، خدا را شکر به ایستگاه هی در پاشا رسیدم با خودم گفتم توی قطار ممکن است، گروس نهم نه بشود خوب از کیکی، کلوچه، چیزی بخرم پیش از من جوانی از کلوچه فروش دورگرد یک کلوچه خرید همین که کلوچه را گرفت یک گاز به آن زد بیست و پنج قروش هم به فروشنده داد فروشنده گفت، میشه پنجا قروش جوان از شد چی چیو پنجا قروش؟ این کلوچه‌ا 15 قروشه‌ ده قروشام باید به ای پول بدی. دست به یقه شدن. جمعیت دورمان جمع شد. این دفعه جوان نگواش و نبرداشت به فروشنده گفت من بهت یه لیره دادم. دوباره دست به یقه شدن. جوان پرسید اسم تو چیه پسر؟ فروشنده گفت کریستوس. جوان همین که این را شنید برگشت به طرف جمعیت و فریاد زنان گفت ای هموطنان هم شاهدین این مرد به ترکا توهین کرد. من یه جوون ترکم. به من میگه دروغگو و به ترک ها توهین میکنه. کسانی که دوره ایمان کرده بودن تا این را شنیدن متفرق شدند. برای شهادت ندادن هر کس به یک طرف فرار کرد. جوان فریاد زد: پلیس! پلیس! به پلیسی که آمده بود گفت: این مرد به ترکا توهین کرده. بدمرو نشان داد و گفت: این آقا هم شاهده. پلیس دستم را گرفت. ای خدا! به پلیس التماس کردم تو رو خدا سرکار من باید به قطار برسم کار ای دارم ولم کنید برم همگی کلانتری من هیچی نشنیدم این حرفا رو توی کلانتری بزنید ای خدا تا حرکت قطار نیم ساعت مانده بود رفتیم کلانتری کم مانده بود گریه کنم به افسر نگهبان التماس کردم خواهش میکنم التماس میکنم جناب سرمان ولم کنید برم اگه به این قطار نرسم، زن و چام هم آواره و سرگردون میشن. زندگیم از دست میره. افسانه هبان که آدم مهربانی بود گفت. میفهمم برادر، اما دست من که نیست. اگه شکایت شخصی بود میذاشتم برید، اما شما شاهد جامعه هستین. چیزی نمانده بود دیوانه بشوم سلیم افندی. خیلی خوب، قرار چی بشه؟ اول، مدارک رو استعلام میکنیم بعد ازتون بازجویی میکنیم بعد میرید دادگاه و شهادت میدید سلیم افندی تو تا حالا همچی بلایی دیدی ای؟ کل آیندهام داشت از بین میرفت دیدم چاره نیست باید فرار کنم تو افسر نگهبان سرش را برگردان زدم به چاک دو تا پا داشتم دو دیگر هم قرض کردم و حالا بدو کی ندو از هر طرف صدای سوت پلیس ها بلند شد توی ایستگاه از این طرف به آن طرف میدویدم در یک لحظه ایستگاه با آن بزرگی پر از پلیس شد. همه مرا دنبال میکردند. دو تا پلیس را رو که رو به رویم درآمده بودند یک جوری غال گذاشتم و پریدم بالا توی قطار. حالا مگر قطار بی صاحب حرکت می کرد. اگر حرکت میکرد خلاص می شدم. از یک سر قطار داخل شده بودم پلیس ها هم پشت سرم رسیدند. همینطور میدویدم پلیس ها هم همینطور سوت می و پشت سرم میدویدند و فریاد می زدند. بگیرید بگیریدش. تا حرکت قطار ده دقیقه مانده بود همینطور طور میدویدم این بار برگشتم و به طرف ایستگاه دویدم برای نجات جانم نمیدانستم به کجا بروم رفتم توی توالت عمومی ایستگاه دیدم در یکی از توالت‌ها باز است منم سریع چپیدم تو و در رو پشت سرم بستم پولیس ها هم پشت سرم آمدند توی راهرو توالت عمومی داد میزدند کجاست کجا رفت در توالت‌ها را یکی یکی می زدند. هر دری را که میزدند از داخل صدایی می‌آمد هره! کسی هست! در توالیتی را که من داخلش بودم هم زدند. گفتم اشغاله! صدای پلیس ها رو شنیدم که بیرون با هم حرف می زدن. یکیشان گفت شما سه نفر اینجا کشیک بدین. رفین تو. بلاخره میاد بیرون. همین که اومد بگیریدش. داشتم خول می شدم سلیم افندی. تا حرکت قطار سه دقیقه مانده. دو دقیقه مانده. یک دقیقه مانده. در را باز کردم و با سرعت نویدم یکی از پلیسها ها پاچم را دیگری دامن کتم را یکیشان هم یقم را گرفت آمدیم بیرون قطار هم سود کشید و رفت قطار که رفت من هم شل شدم بردندم کلانتری. تری افسر نگهبان اخمایش را توی هم کرد و گفت آقا شما شاهد جامعه هستید متهم نیستید که برای چی فرار میکنیم گفتم فرار نمی کنم یک دفعه تنگم گرفت برای همین افسر نگهبان گفت کسیو که ازش شکایت شده بیارید پلیس ها رفتند چند دقیقه بعد برگشتند و گفتند نیست قربان یعنی چی که نیست خب اگه نیست شاکیو بیارید پلیس ها رفتند چند دقیقه بعد برگشتند و گفتند نیست قربان هر دوشون فرار کردند. افسر نگهبان عصبانی شد به طرف من برگشت و گفت همش به خاطر شماست واسه چی فرار کردین؟ سرمون گم شد به گرفتن شما متهم و شاکی فرار کردن یالله شما هم برید دیگه اینطوری شد سریم افندی قطار را از دست دادیم کار از دست رفت دختر کوچکم و مادرم توی بیمارستان بزدریم زنم و دختر بزرگم توی خانه یکی از آشناها میمانند. پسرم هم توی زندان است. من هم الان دارم میروم ملاقاتش. به امید دیدار سلیم افندی.